وقتی به انسان میپردازیم در میابیم که او در تلاشی تقریبا است تا اهمیتش را به عنوان یک موجود از دست ندهد ولی از آنجایی که او یک موجود به ویژه سمبولیک نیست هست این تلاش در سطوح زریف و پیچیده سمبولیک صورت میگیرد درخشش بیشتر فردی دیگر به معنای مورد حمله واقع شدن در یک سطح اساسی تداوم موجودیت میباشد باختن درجه دوم شدن عدم موفقیت در رسیدن و ماندن در بالاترین و بهترین پیامی به مرکز عصبی موجود می فرستد. من در سایه قرار گرفتم. من نامناسب هستم. بنابراین من برای تداوم همیشگی شایسته نیستم. برای زندگی، برای ابدیت، بنابراین خواهم مرد. ویلیام جیمز این استراب روزمره برای شکست را دید و آن را با نصر موشکافانه خیش چنین ثبت کرد. شکست بعد از شکست جهان در هر چرخش اینگونه به ما مهر میزند ما اشتباهات حماقتها و فرصتهای از دست رفتهمان را در آن میپراکنیم همه خاطراتی که از ناشایستگیهایمان داریم و با چه تأکید نفرینگری محو میشویم ظریفترین شکل رنج که برای آدمی شناخته شده است به این نتایج تحغییرآمیز رفت پیدا میکند و اینها تجارب اساسی انسان میباشند فرایندی چنان فراگیر و همیشگی که ظاهرا بخشی جدایی ناپذیر از زندگی است چرا؟ چون این موضوع به اشتهای اساسی موجود رفت بیدامی کند ادامه دادن به تجربه کردن و آگاهی به این موضوع که فرد قادر به ادامه دادن است چون او ویژگی خاص داراست که در برابر مرگ و نابودی مسونش می سازد. این پدیده فراگیری حسادت را نیز می دهد حسادت علامت خطر است که موجود به خودش میفرستد زمانی که سایهای بر روی او گسترده میشود زمانی که با از دست دادن و کمتر شدن تهدید میگردد تنها با درک این انگیزه قادر خواهیم بود به چگونگی کارکرد معیارهای که درجه اهمیت در جامعه پی ببریم و معیارهای صلاحیت فرد برای دوام بیشتر و تنها با مقایسه خودش با موجودهای مشابه یعنی آدمهای دیگر است که او میتواند کمی اهمیت بیشتر برای خودش ادعا کند. پر واضح است که اگر ارزش نهایی فردی از یک خرچنگ یا یک روباه بیشتر باشد فایده زیادی ندارد ولی برجسته تر به نظر رسیدن از آن یارو که آنجا نشسته همانی که چشمهای سیاه دارد چیزی است که با خودش و درجات را به همراه میآورد ولی شما نمیتوانید موقعیت خود را در برابر موقعیت فردی دیگر به رخ بکشید مگر اینکه فرد دیگری وجود داشته باشد و همچنین قواعدی برای موقعیت و قواعد زبانی برای بیان موقعیت برای بیرون آمدن از گروه های اجتماعی با خود متورم شده تر. جامعه تقریبا در هر جایی چون این هایی برای خود بزرگ برای برای پوزدادن برای تحقیر یا تنها برجسته تر به نظر آمدن در سکوت مانند نشان دادن دستآوردهای های آلیه فرد فراهم می کند. اگر هوکارت میگوید که آدم نمیتواند زندگی برای خودش فراهم کند و باید آن را از همنوعانش از طریق مراسم جمعی دریافت کند، پس ما میتوانیم این گفته را فراتر ببریم و بگوییم که آدم نمیتواند اهمیت برای خودش فراهم کند. و مهم بودن حالا میبینیم که مشکلی عمیق در تأمین زندگی است، مهم بودن مساوی با تداوم است، مساوی با زندگی. سلام علیه سخاوتی هستم با برنامه هشتم پادکست 822 امروز دوشنبه هفتم فروردین 1396 امیدوارم که هنوز زنده باشید و توی تصادفات رانندگی تعطیلات نروزی کشته نشده باشید یکی دو ساعت قبل از سال تحویل پدرخانم من فوت کرد و هفته‌ای که گذشت من تردیباً به طور کامل در مراسم ازادریه ایشون خاک سپاری و مراسم مرتبط بودیم خود من مدت ها بود که یعنی شاید بیشتر از 20 سال بود که بعد از فوت پدر که سال 1373 بود اگه اشتباه نکنم و اله 1373 دیگه توی چنین مراسمی شرکت نکرده بودم و خیلی, خیلی از چیزهایی که دیدم و شنیدم برام, برام تازگی داشت و برام جالب بود که سعی میکنم توی این پادکست تا جایی که یادم میاد رو برای شما بگم بارسترین اتفاقی که این هفته افتاد روز بعد از فوت پدر خانومم که ما من به همراه خانومم رفتیم بیمارستان توی بیمارستانشون فوت کرد چند روز بود که توی آی بودن به دلیل حال خیلی بدی که داشتن و همونجام فوت کرد روز دوشنبه یعنی روزی که سال تحویل بود به ما اطلاع دادن و ما سه شنبه صبح اول وقت رفتیم که کارهای تصفیه بیمارستان و همچنین ارسال ایشون به بهشت زهرا رو انجام بدیم ما اول وقت رسیدیم بیمارستان و پرونده حسابداریشون خوشبختانه تکمیل بود و داروخونه، اونجا تعطیل نبود برخلاف بیمارستان قبلی این یه بیمارستان دیگه است این بیمارستانی نیستش که داروخونه توش تعطیل بود داروخونه تعطیل نبود همه اطلاعات کامل به حسابداری رسیده بود پرونده حسابداری کامل شده بود صورت حساب ساده شده بود و حسابداری فقط باید می اومد که ما یه یک ساعتی نشستیم تا حسابداری اومد و ما رفتیم پیش حسابدار توی قسمت پشتی ساختمان بیمارستان و حسابدار که یه مرد نسبتا جوانی بود اینم بگم که قبل از بستری کردن ایشون یه پولی واریس کرده بودن خانواده پدر خانومم و ما, ما طلبکار بودیم از حسابداری بیمارستان حساب داری باید یه پولی رو به ما می داد دقیق اگه بگم 6 میلیون توم هم موقع بستری واریس شده بود و بابت اون یک شبی که اونجا بودن 4 میلیون و خوردهی 4 و 300 فکر می کنم به اضافه پول یه شب سرطمونه باید کسر می شد و یک و خوردهی باید به ما می دادن. که حسابداری بعد از یک همین درون در زدن و گفتن جملات نامرتبط به این نتیجه رسید که پول نداره و کاری نمیشه کرد ما, ما تأکیدا پرسیدیم که واقعا کاری نمیشه کرد گفتم ما پول نداریم الان کاری نمیشه کرد و خانم من به دلیل اینکه اگر یه چیز اینم بگم که یک ویژگی مشترک بین من و خانم من باشه اون این استش که آه. میشه میشه این ویژگی مشترک رو انگر منیجمنت یا مدیریت عصبانیت گذاشتنی یعنی در زمانهایی که به شدت عصبانی میشیم میتونیم این عصبانیت رو برای به هم زدن موضوع مدیریت بکنیم خانم اومد تو لاوی بیمارستان و منم دنبالش و اونجا فریاد زد که کسانی که اونجا بودن برن رئیس بیمارستان رو صدا بکنم رئیس بیمارستان نبود ولی جانشینش اومد که خانم جوونی بود و بعد از اینکه یه مقدار با داد و فریادایی ما مواجه شد دوباره از ما خواست که با به اتفاق ایشون بریم حساب داریم رفتیم حسابداری و حسابداری دوباره داستانش رو تکرار کرد و این دفعه من جزئیات مکالمات یادم نیست ولی خانمم یه تابلوی که اونجا بود یه تابلوی از تابلوی تلقی که روش نوشته بود حسابداری اشتباه نکنم رو برداشت و کوبون زمین و شکست به اضافه کلی داد و بیداد و فریاد و اینا که ما دوباره از اتاق حسابداری اومدیم تو لابی و این همه این ماجرا همرو با کلی داد و فریاد بود این بار خانم جانش، جانشین رئیس بیمارستان تصمیم گرفت که مبلغی رو که باید به ما میدادن رو یه شماره کارت از من بگیره و واریز بکنه در همین حین آقای حسابدار به دلیل اینکه یک یک چیزی ما اونجا شکسته بودیم زنگ زد به 110 و, و یک مأمور 110 اومد مأمور صد و ده که اومد شروع کرد به وساتت کردن و خداگری که به نوعی مسالمت آمیز این مسئله رو حل و بکنه که با مقاومت خانم من مواجه شد که بهش گفت کاری نداشته باشه و اجازه بده ما تصفیه سامون رو انجام بدیم بعد هر جا که اون بگه ما میاییم بابت شکایتی که انجام شده ظاهرا معمور صد هم از این موضوع خوشش نیمد و بی زد به مرکز که یه ماشین دیگه بفرستن یه ماشین دیگه هم از صده اومد و یه جناب سروانی ازش بیاده شد اومد داخل بیمارستان و خیلی ساکتتر از معمور قبلی نشست و تنها جمله ای که می یکی دوباریم بود که شما داغ دارید و ما چیزی به شما نمیتون بگیم خلاصه ماجرا ادامه پیدا کرد ظاهرا یه شکتی تنظیم کردن با بت چیزی که شکسته شده بود و توهین هایی که انجام شده بود. آه اینم بگم که ما مقدار زیادی توهین کردیم به همه سیستم بیمارستان. در اوج عصبانیت بابت این یه شکایتی تنظیم کردن و خودشون به شاهدی امضا کردن تا اینکه کارت من رو به من پس دادن و گفتن که با شما نقدی تصویح حساب میکنیم نمیدونیم از کجا این پول پیدا شد و تصویح حساب رو بالاخره انجام دادن اولش نمیخواستن صورت حساب ما رو بدن ولی با اصرار به لخره صورتحساب دادن جالبه بدونید برای کسی که سرطان خیلی وخیم داشت و توی آی سیو واقعا دیگه چیزی ازش نمونده بود براش فیزیوتراپی و مشاوره نوشته بودن توی اون, اون صورتحساب حالا اینا،, اینا که دیگه جزئیات ماجره است صورتحساب رو گرفتیم و از بیمارستان به سمت بهشت زهره حرکت کردیم من برای بار اول بود که می رفتم به اشت زهره دلیلش هم که همه بستگانم زمانی که ما قزمین زندگی می کردیم اونجا،, اونجا فوت کرده بودن اوناییشون که فوت کردن و من من گورستان قزمین رفته بودم و بعد از این هم که در تهران ساکن شدم تا حالا پیش نیامده بود که برم به زهره این بار که اولین بار که یعنی هفته پیش روز سهشنبه یعنی اول فروردین رفتیم برای خاک سپاری پدرخان من بسیار تحت تحصیل برگرفتم یه مرکزی هست اونجا به نام مجتمع اروجیان که همه کار کفن و دفن کسانی که فوت میکنن اونجا انجام میشه یه قسمتی داره به نام های تطهیر که در حقیقت همون قصصال خونه یا مردشور خونه این اسامی هم که جدیدن انتخاب شده خیلی اسامیه الهام بخش و جالبیه سالون های تطهیر و کل مجتمع هم اسمش از اروجیان قادتا برای کسانی که میخوان اروج کنن یا دارن اروج میکنن یه ساختمون مرکزی هست اونجا که کار اداری انجام میشه داخل این ساختمون و البته جاهای دیگه ساختمون تابلوهایی هست مثل تابلوی ها که وضعیت هر کسی که اومده و پذیرش شده رو می‌نویسه که در چه حالی هست اسمش به همراه وضعیتش روی این تابلو دیده میشه ما یکم دیر رسیدیم به خاطر کاری که توی بیمارستان پیش اومد ولی در این حال کار اه اه خاک سپاری پدرخانه هم طول کشیده بود به خاطر اینکه بیمارستان مثل بقیه کاری که انجام نهده بود درست برگه فوت ایشون رو صادر نکرده بود و اونجا مجبور شده بودن که دوباره پزشک پانونی ببینتشون و جواز دفن صادر کنه و برگه فوت برشون و این ظاهرن یه کار بود که یکی دو ساعت طول کشیده بود معماری اونجا و عظمت اونجا بسیار قابل تحسینه بسیار تأثیر گذار هست مجتمع اروجیان در زمینی به وسعت 6.5 هکتار و در ساختمونی به 18 هزار متر مربع زیر ساخته شده و توی تابلوی که برای افتتاحیه کنار در ورودیش دادن نوشته شده بود که با چشمنداز 50 سال نیاز آینده کشور و با در نظر گرفتن خدماتی که این مجتمع به سایر شهرستان ها میده این،, این بنا ساخته شده که البته واقعا هم میشه گفت اقراق نیست یعنی در روز اولیه که ما اونجا بودیم بسیار شلوغ بود به اشتظهره و زارن تعداد زیادی از همین قربانیان تلفات جدی اونجا آورده بودن به خاطر همین خیلی شلوغ بود طوری که جای پارک به سختی پیدا میشد ولی با وجود این نظم و سرعت انجام کارها در اونجا چیزی فراتر از تصور من بود یعنی هر کسی داشت کارش رو انجام میداد هیچ جایی نبود که تعطیل باشه یا بگن یک ساعت دیگه باز میشه یا تا فردا تحتیله اصلا اینجوری نبود همه چیز منظم تمیز شسته رفته سر جای خواهش قرار داشت بیزنس های مرتبطی که اونجا کار می مثل چاپ اعلامیه چاپ بنر مثل ساعت داشتن کار خودشونو به بهترین شکل و بهترین کیفیتی ارائه می دادن. معماری اون ساختمون و حس فضایی و مکانی که انسان در اونجا میکنه بسیار بینظیر برخلاف بسیاری از ساختمون های شهر یا همی... شهر تهران یا بقیه شهرها که میشه گفت بیشتر ساختمون معماری با این نگرش ندارن که حس مرتبط با اون فضا رو ایجاد بکنن در مخاطب در کسی که اونجا حضور پیدا کرده مجتمع ارودیان از اون اول تا اون آخر ای این حس رو به شما میده که این ساختمون برای چی تر شده چه کار میکنه و فلسفهی وجودیش چی سالن های انتظار بسیار بزرگ جادار و تمیزی اونجا هست که تمام کسانی که برای خاک سفاری عزیزانشون اومدن رو جا میده و حتی بیشتر خیلی بیشتر از سالن های انتظار فرودگاه یا ترمینال های اتوبوس که پر میشه و معمولا اورفلو میکنه در مجتمع این اتفاق نمیفته. تاقیه های خیلی بلند و مدرنی اونجا ساختن که این حس اروج این حس اورود رو به میده این تاقیه ها بین ساختمان مرکزی و سالون های تحتیق قرار داره جایی که کسانی که فوت کردن رو بعدش از شستش رو میارن بیرون و اه، اه، یه مقدار اینا رو تشکیل میکنن و بعد میذارن پایین توی یه سالون دیگهی ای تا اینکه که نمازه میت براشون خونده بشه بعد, بعد از این تاقیی که میگم حتی یک یه لونهی کبوتر خیلی خیلی بزرگ هست که به شکل یک به شکل یک آبخوری کبوتر یا یک, یک،, یک گمبده در حقیقت که با توری فلزی ساخته شده ولی خیلی بزرگه که فکر می کنم به سه یا چهار قسمت رو کردن که ظاهراً گناه های مختلف کبوترهای رنگی و تزینی توش هست به تعداد خیلی زیاد شد بگم نزدیک هزار تا کبوتر اون تو هست یعنی که این این لونه کبوتر به جورت می بگم از همه جاهایی که من حداقل اقل دیدم که هیگون زنده نگه می دارن مثل جایی که توی پارک پردیسان پرنده نگه می دارن یا بعضی از باغ وحشایی که من دیدم تمیزتر و زنده تر و باشکوه‌تر هست خلاصه در یک کلام این, این فضا یک،, یک زنده بودن یک زندگی داره که خیلی آیرانیک هست یعنی یک تضاد دیداره با انتظاری که آدم از بهشت زهره و جایی که مرده ها اونجا دفن شدن و دفن میشن داره ما یک ساعت دو ساعت قبلش توی بیمارستان بودیم که ظاهرا باید تجسم تبلور و سمبول زندگی و زندگی بخشیدن باشه به این فضای بیمارستان مرده و دد بود، و, و روابط آدم و از اون نگهبان دم در گرفته تا اون صندوقدار تا اون حساب تا اون جانشین رئیس بیمارستان نوع کاری که انجام می و فضایی که اونجا وجود داشت و بعد خیلی جاهای دیگه شهر برخلاف انتظار به اشتظار از اون بد و ورود کسانی که اونجا آمدن و به خصوص این مجتمع ارودیان یک زندگی یک شروع هیجان خیلی خاصی در اونجا وجود داره و جاریه این, این منتفیه نیستش کسانی که اونجا هستن به خصوص به خاطر اینکه روز اول هست که اومدن و که عزیزی رو به خاک بسپرن گریه شیون و آهونالی خیلی زیادی در، به خصوص در مواقع بلند میشه به فضا و بمهندوه خیلی زیادی حاکم هست در این حال فراتر از اون قماندوه و نالوشیبن یک،, یک زندگی که واقعا من نمیتونم توصیف کنم که این از کجا میاد از اون, از اون بنا از اون فضا از اون طراحی یک بارچه کل و مرکز گرفته تا،, تا تمیزی و کار کردی که همه آدم اونجا دارن کارشون انجام میدن و سرویسشون ایران میدن و به هیچ کم و کسری حس نمیشه هیچ وقفی وجود نداره هیچ هیچ ام، ام، هیچ مانعی ظاهرا نیست برای اینکه کسی که میخواد عروج بکنه عروجش رو انجام بده حتی برخلاف فرودگاه که یه چند کیلومتر اون طرفتر از بهشت زهرا هست و اونم به نوع دیگه‌ای قراره یه دذش عروج بکنن و پرواز بکنن اونجا هم یه چند تا سالون داره روی چند تا مانیتور وضعیت هر پرواز رو نوشته ولی اونجا همیشه خودتون میدونین یه دیده تاخیری هست یه گیروگوری هست یه صفی هست یه معطلی وجود داره یه نابسامانی وجود داره یه نارضایتی وجود داره اینجا هیچ کدوم از اونها نیست به اضافه اینکه وضعیت عروج هر کس هم به شکل فردی و به شکل کاملا خصوصی روی مانیتورها نوشته شده که هر فرد در چه مرحله از عروج خودش قرار داره و شما میتونید این اطلاعات رو کسب بکنید من اونجا پیش خودم فکر می کردم که اگر این منیتور ها قادر باشن تا چند سال آینده کمی قبی تر رو هم نشون بدن قبل از مرگ فرد چه اتفاقی میفته. یعنی یه جایی مانیتوری باشه که شما بدونید مثلا یه فردی فردا می میره یا الان هفتی آخر زندگیشه دو ساعت مونده به اینکه قبل قلبش از کار بیسته یا سه ساعت مونده که ریش دیگه اجازه نده بهش که تنفس بکنه سه ماه مونده به اینکه اولین تومور سرطانی درش ظاهر بشه امیدوارم هرگز علم اونجا نرسته اگه خیلی بحشت نکلات بود بعد از اینکه که من از سالان تطهیر اومد بیرون به خاطر اینکه که ظاهرن هم هم خانواده خیلی به حال با محبت و تعداد زیادی اونجا بودن هم درجه یک و هم درجه دو و هم تعداد زیادی از دوستانشون زمانی که ایشون, از ایشون رو از سالن تطهیر بیرون آوردن خیلی شیون و ناله بسیار عجیب قریبی به هوا رفت و میتونم میگنم که کل اون محوطه و حتی کسانی دیگری که برای عزیزانشون جا بودن تحت تاثیر این این شیون و نالی که به حوارف اصلا کاملا میشه گفت حواسشون پرد شد و ایشون رو آوردن گذاشتن زمین توی یه سالن دیگه یه ده دقیقه یه رو طول کشیدی تا اطرافیان موفق شدن که دخترانشون رو از تابوت ایشون دور بکنن که هاجاها بتونه نمازه میت بخونه و بعد دوباره در دقیقه یروبی طول کشید که بعد از نماز اجازه بدن که تابوت رو ببرن و بزنن توی آمبولانس برای تشیب زمانی که به سر قبل ایشون رسیدیم یه جایی بود که به دو طبقه اگه اجتباه نکنم خاک ازش برداشته شده بود و ایشون در طبقه پایین اون قبلی که خریداری کرده بودن قرار بود که دفن بشه من همون روز و روزهای بعد فهمیدم که قیمت این قبر ها چقدر میتونه متفاوت باشه بسته به اینکه در کدوم قطعه شما رو دفن بکنن این میتونه مثلا از یک میلیون تومن تا فکر میکنم 18 میلیون تومن که قبر دو طبقه ایشون بود که خریداری کردن تا 7-80 میلیون تومن 100 میلیون 200 میلیون قبر دیگه که ظاهرن همچین همچنین قیمت هم توی پشت زهرا موجوده تا آرامگاه های خصوصی که ظاهرا بالای یه میلیارد تومنه که از کنار بعضی هاش که شدم بالای همه ای آرامگاه ها نوشته بود آرامگاه خاندان ایکس و ایگره. همه ای آرامگاه ها متعلق به یک خاندانیه معلومه که حال اینا خانواده های بسیار سروتمند و مهمی هستن که تونستن برای خودشون یک آرامگاه بخرن آرامگاه فکر فکرم مثلا اتاق 3 در 4 سه 3 در 3 یه همچین سایزی که مسقفه و درد داره و شما تو این کنترلش دست خانواده شماست و هر صورت ایشونو در یک قطعه‌ای که تقریبا میشه گفت خیلی نزدیک بود به مجتمع اوروجیان و ما تونستیم پیاده از همونجا برسیم گذاشتن زمین و عده زیادی جمع شدن تو این فاصله خدماتی که به شکل خیلی سریالی و لایناپ ارائه می شد خیلی جالب بود یعنی یه اده اومده بودن یه چادری اونجا برپا کرده بودن که اگر آفتاب باشه یا بارون بیاد یه بتو... و سندلی زیر چادر که یه بتونن اونجا بتو... بشینن یعنی در این حال که شما میری اونجا برای تشهیر جنازه و خاک سپاری عزیزتون که فوت کرده در این حال رفاه و آسایه شکستایی که زندن اصلا شوخی گرفته نمیشه و بعد بلندگوهای خیلی قوی که بهش میگن اکو اگه اشتباه نکنم اکو آمپلیفایر و کسی اونجا حضور داشت و مداح ها معمولا مشخصات میخواد که این مشخصات من توی مسجد و مراسم دیگه امین رو بارها و بارها شنیدم که مداح اول بسم الله روی تیکه کاغذ مشخصات میخواد که این مشخصات شامل نام و نام خانوادگی متبفا و بعد اسم تمام کسانیه که دوست دارن یا خانواده دوست دارن که اسمشون اونجا گفته بشه که چه کسانی مرتبطن و چه کسانی اومدن اونجا که خیلی وقتا ترتیب هم توی خوندن این اسم مهمه و بعضی ها اسم محل کار یعنی اسم شرکت ها و سازمان هایی هم که افراد وابسته به اونها وابستگی دارن رو اصرار دارن که باشه و ذکر بکنن <تصفيق> توالی توالی این اتفاقاتی که افتاد رو من ممکنه دقیقاً نتونم بگم ولی پدرخونان گذاشتن بالای قبرشون و با تلاش زیاد بالاخره موفق شدن خانواده درج یک رو بزنن کنار تا ایشون رو درون قبر بذارن و بعد دوباره دو سه نفر رفتن داخل که صورت ایشون رو ببینن و من دیتیلش رو نمیدونم ولی خیلی شلو پلو بود و گریه و شیون خیلی زیادی بلند بود و کسی که باید دعا نمیدونم یه چیزی رو می‌خوند سر یه موقعی که ایشون آرامش پیدا بکنه در دنیای دیگه خیلی اصرار داشت که این, این کموشن، این گریه و ناله یکم متوقف دشه که ایشون بتونه دعاش بکنه که بلاخره این اتفاق افتاد و بعد سقف طبقی ایشون رو کارگری که اونجا اومده بود گذاشت و روش خاک ریختن و بعد دیگه یه, یه ترمس روش را گشته با نکنن میدازن و گل و اکسه و یه سری این کارا و بعد مدداهی شروع میشه بسته،, بسته به کسی که اون توی قبل هست چند نسخه از قبل آماده است که مدده این رو میخونه قیافه مدده خیلی شبیه به کارمند حسابداری همون بیمارستان بود یعنی اگر این رو آدم رو شما تو خیابون ببینید نمیتونین میتونید حس بزن که این مدده هست ای به کتوش شلوار خیلی ساده و صورت اصلاح شده و ترتمیز یه آدم خیلی معمولی مثل من و شماست که شروع میکنه از محاسن ایشون گفت، گفتن خبشون به دلیل که یک مرد مسن بود دائما لقب پدری مهربان و همسری فداکار رو به ایشون میدادن و اون وسط هم از کسانی که اومده بودن از زهماتشون وقتی که گذاشته بودن تشکر میکردن کنارش هم یه سری چیزهایی که خب میتونست یه مقدار قمنگیز و اینا باشه نقاطیش میکردن که یک درامایی به کل صحنه اضافه بکنن البته ظاهرن به ایشون گفته بودن که دراما به اندازه کافی هست ایشون, ایشون فقط به فکت ها اشاره بکنه یعنی که ایشون پدری یعنی پدری بود مهربان و وف... همسری فداکار دوستی خوب آدمی خیر و این چیزا من در تمام این مدت من فکر کنم خیلی این کار می رو میکنن داشتم خودمو میذاشتم اونجا یعنی خودم رو تصور میکردم که الان مردم و چون این مراسمی رو برام برگزار میکنم و خیلی کمدی به نظر میامد زمانی که خودم رو تصور میکردم از اون اول که از سالان تدهیر من رو بیرون میارن فکر میکردم که خب 7-8 نفر مرد پرقدرت کی خواهد بود که من رو اونجا بتونه بلند بکنه تابوت من رو و قبل از نماز میت یه دور منو رو به چرخونه از این بگیر تا زمانی که دور قبل تصور میکردم که نهایت مثلا دو نفر یا یه نفر اونجا خواهند بود و گریه زاری زیاد, زیاد که اصلا نکمم نمیتونسته باشه و بعد از همه جالبتر این که مددا چی میخواد بگه در مورد من پدری, فدا... پدری مهربان که نمیتونه... نمیتونه باشه همسری فداکار هم که خیلی دور از واقعیته چ... چه توصیفی میخوان ب... به مدده بگن یا مدده چه توصیفی داره که کمی حتی اقلی یک ذره به واقعیت نزدیک باشه و بعد مراسم جنازه و خاکسپاری که دو نفر آدم توش نباشن چقدر میتونه دراماتیک که نه میتونه تراجیک باشه و تنها بودن یک کسی که مرده و حالا بعد از مرگش هم خیلی کسی دوربرش نیست این, این چج... چجوری میتونه در یک جامعه ای که این به یه همچین نیاز داره و بسیار بر اساس این مراسم اجتماعی میچرخه چه چیزی خواهد داشت بالاخره بعد از تموم شدن مراسم کفن و دفن ما به اجته رو ترک کردیم و در یک رستوران که از قبل هماهنگ شده بود کسانی که شرکت کرده بودند در مراسم خاک سپاری دعوت شدن که ناهار میل بکنن اونجا جو یه ذره تر بود یه ناهاری خوردیم و رفتیم خونه متوفا یعنی پدرخونوم یا مادرخونوم هم جالبه که وقتی کسی فوت میکنه اطرافیان خانواده درجه دو و حالا درجه سه بعضی وقتا یا همسایه‌ها دوستان تا جایی که بتونن روزای اول میان سر میزنن به اطرافیان دلداریشون میدن و علاوه بر دلداری میتونن بگم که حواظپرتی یا دل مشغولی براشون ایجاد میکنن چون باورتون نمیشه که چه میزان پذیرایی باید جاری باشه در خونه یا هر جایی که مرتبط با مراسم کفن و دفنی یا بزاداری هست سینیای خورما و دیس های شیرینی و چایی و میوه هر سی ثانیه یک بار دور چرخونده میشه برای مهمونا و بازماندگان آن مرحوم یک لحظه از پذیرایی کردن نمیتونن فارغ بشن طبیعی خب دیگه خیلی نتونن فکر بکنن به داغشون و به کسی که از دست دادن و در همین هین برنامه ریزی برای مراسم پیش روی یعنی مراسم سوم که حالا خوشبختانه در این کیس سوم و هفتم رو یک جا گرفتن من یادم برای پدر بزرگ مادر بزرگم همه اینا جدا بود یعنی هم سوم بود هم پنجم بود و هم هفتم و بعدم 40 اینجا سوم و هفتم رو یک جا گرفتند و برنامه‌ریزی برای شروع شد از انتخاب مسجد گرفته تا اون روزم دوباره یک رستورانی برنامه‌ریزی کردن که ناهار بدن به کسایی که میان و بعد از ناهار مسجد نحوه پذیرایی و دیتیلش واقعا میتونه چندین روز همه اطرافیان متوفر رو مشغول بکنه علاوه بر این یعنی اول نهار بود بعد مسجد یعنی نهارم کافی نیست و خورما و شیرینی و حلوایی تو مسجد یه بسته های میوهی هم باید بود توی مسجد که اینو من واقعا هنوز هم که هنوزه نمیتونم درکش بکنم یعنی بیشتر از چیزهای دیگه نمیتونم درک بکنم که روز قبل مقادیر زیادی میوه خریداری کردن شامل موز سیب، خیار و یه قوطی آب میوه به همراه یه سری اکسسوری مثل دستمال کاغذی و کارد یه بار مصرف و نمک بسته بندی شده که اینا رو ما شستیم می میوه ها رو و توی ظروف یه بار مصرف مثل مثل کیترینگ هواپیما مثل چیزی که تو هواپیما بین پرواز تهران مندر عباس ممکنه به شما بدن اینا رو بسته بندی کردیم هر بسته یه سیب یه خیار یک موز یه کارد یه بار مصرف، یه بسته کوچیک نمک و یک دسمان کاغذی. یه تعداد خیلی زیادی از اینا رو بسته بندی کردیم و اون روزی که مسجد بود این رو تحبیل مسجد داریم من از پذیرای نهار اینجا میگذرم خیلی چیز خاصی نبود توی رسطورانی سالانی یه دادا اومدن و چولی که آب خوردن و بعدم به فاصله از اونجا اومدن مسجد این مسجد اه، اه، طبق گفته بعضی از اطرافیان یکی از بهترین مساجد تهران برای برگزاری مراسم مراسم سوم هفتم مراسم سوگواری هر چیزی که اسمش رو مجلس ترحیم آره مجلس ترحیم معماری مسجد کاملا میتونم بگم برخلاف چیزی که ما از مسجد به ذهنمون میاد یا در مساجد قدیمی مثل مساجد جامعه شهر خودمون مسجد جامعه قزوین اسفهان اینا دیدیم یز ناین این, ای، این مساجدی که من آه، آه، به قصد گردشگری و دیدن معماری مسجد بهشون سفر کردم دیدم یا مساجدی که توی استانبول هست یا توی, توی دمشق اینا،, اینا مساجدی بوده که من رفتم ببینم مسجد, مسجد چیه چجوری ساخته شده چه حالا هوایی به آدم میده ولی این مسجد که اسمش از مسجد جامعه شهرک غرب تو اول بولوار فرهزادیه بعد از میدون سنت توصیم کم حتما بریم ببینیم, ببینیم که این, این حرفای منو بتونیم ارزی رو معماری این مسجد به نظر میاد کاملا بر اساس برگزاری مراسم ترحیم شکل گرفته و شما از در اصلی مسجد که میرین تو حس نمی کنین که اینجا اینجا که دادن میان که مراسم مذهبی مسلمان ها که خوندن نماز هست رو انجام بدن یه،, یه،, یه،, یه آسانسوری داره برای حمله میوه ها، این میوه های بسته های میوه به زیر زمین به دو طبق پایین تر که اونجا دو تا سالن آنفی خیلی بزرگ هست که فکر میکنم 400-500 تا صندلی داره یکی برای آقاییون که برای خانوما که این حجم از آدم رو بتونه توی مراسم اه اه گنجایش بده و همه چیز حول برگزاری این مراسم اونجا شکل گرفته از, از درای ورودی، از, از راه راه، از جاهایی که برای قرار دادن تاج های گل قولپیکر در نظر گرفته شده که حالا این تاجای گلم خودش در نوع خودش یه پدیده قابل مطالعه میتونه باشه که هر خانواده ای که تاج گل میفرسه یه جوری نسبت به یه خانواده دیگه ای که اسمشون رو وسط تاج گل میزنن از طرف مثلا خانواده فلان به نوعی پیشی میگیره یک نفر یا بعضی وقتا دو نفر به سختی میتونن این تاج گل رو حمل بکنن و توی یه وانت پیکان بعضیش هاش نمیشه و وانت نیسان میگیرن برای حملش در هر سوات این بسته های میورم و نیم ساعت قبل بردیم توی مسجد و تقسیم کردن بین آشپسخونه یعنی بین قسمت زنونه و مردونه که بعد از مجلس به کسایی که اومدن اونجا بدن وزشون پذیرایی بکنن یه سیب یه خیار یه موز و یه آب میوه میتونه میتونه یه وعده غذایی باشه مگه به یه سرباز در زمان روم یا چنگیز یا اسکندر یا چه میدونم حتی در همین جنگ ایران و عراق یک روز که می‌جنگیده مگه چقدر بهش چند کالری بهش غذا میدادم که حالا کسی که میاد در یک مجلس ترحیم بعد از خوردن یک چلو کباب یک وعده سنگینه گوشت و برنج در رستوران ساعت دوازدونین یک تا یک ساعت بعد یعنی دو در مسجد نیاز به چونین پذیرایی سنگینی داده خیلی عجیبه البته خورمای مغزار یعنی خورمایی که به جای هستش مغزا گردو هست و حلوه هم و یه سر شیرینی دیگه هم در کنار داستان هست و آب مدنی و چای هم که خب حتما باید باشه باز دوباره اینجا من خودمو داشتم میذاشتم جایی کسی که فوت کرده و ایدئالم رو برای پذیرایی از مهمونام تصور میکردم تحجیم میدادم نهار نباشه ولی اگر جایی میان برای مجلس تحریمم که به حال به عنوان زحمتی که کشیدن به حال شما وقتی توی نمایشگاه هم میرین که با بیزنس یه شرکتی آشنا بشین یه اشانتیانی به شما میده یه جوری از بابت توجهی که بهش کردین از شما تشکر میکنه با دادن یه خودکار یه کیف یه سررسید یه،, یه چیزی که بگه من ممنونم که به من توجه کردید و اینی درم من از خیار اون بستهی میوه گرفتم چون خیار رو در خیلی از فرهنگ ها میوه نمیدونن و این سبزیجات خیار مثل سیب یا مثل پرتغال نیست و من فکر کردم که یه مقدار خیار و یه مقدار کاهو و بروکلی توی یه بسته با یه مقدار یه بسته کوچیک روغن زیتون بذارم که این رو بتونن بعد از مراسم یه سالت باهاش درست کنن بخوان شاید مثلا یه دونه گوجه بد نباشه یه رنگی به بسته میده یه گوجه یه خیار کاهو بروکلی و اگر هم دیگه مثلا خیلی بخوایم تحویل بگیریم میشه یه مقدار کنجد یا مغز تقمی آفتابگردون هم اضافه بکنیم توی بسته های کچیک. یا حتی یه مقدار کشمش و مغز گردو و بستگی داره که شما سالاتتون رو چجوری دوست داشته باشیم ولی همین که گفتم رو من خودم تنجیم میدم توی سالات حتی روغنزهیتون به به تنهایی هم کافی نیست باید یه, مثلا سر... یه بسته کوچیکم هم سرکه بالزامیک توش بذاریم من فکرم تا ده بیس سال دیگه یه همچین ترندی رو ما خواهیم، شاهد خواهیم بود در پذیرایی مجلس ترحیم این چیزی, که من... این چیزی که من دوست دارم توی مجلس ترحیمم داده بشه اگر کسی باشه که بتونیم وسیعت من رو اجرایی بکنه و بعد اگر کسی باشه که اصلا بیاد در این مراسم من شرکت کنه تو مراسم سوم و هفتم پدرخانومم شاید 500 نفر آمده بودن مرد و زن با هم دیگه و حتی دو نفر چینی اونجا بود که نمیدونم اینا شاید رابطه کاری داشتن با هم دیگه تازه میگفتن چون روز تعطیل بوده و تو ایام عید بوده و اگر غیر از این می بود چند هزار نفر می اومدن به دلیل گسترده کاری و اجتماعی که ایشون داشته در هر صورت این مراسم مسجدم گذشت و مراسم تسلیت گویی خانگی ادامه پیدا کرد تا دیروز که روز هفتم ایشون بود و در بهشت زهرا برگزار شد باز دوباره یه اده اومدن اونجا چادر زدن، سندلی گذاشتن، دوتا میز گذاشتن یه وانتیه دیگه که هماین شده بود، یه کتری بزرگ آب جوش آورد و خلاصه همیه بسات رفاه حال کسانی که اومدن اونجا فراهم شد و از قبل بولنگو هم ست شده بود آماده بود که مدداخ شروع بکنه به مددهی مدده هم خیلی خیلی خوب فراتر از انتظار من یعنی چیزی که در 20 سال پیش یا 25 سال پیش دیده بودم توی غزوین یه خیلی متنوع شعر میخوند از شاعرای مختلف یکی دو تا جمله میگفت اون کلیشه پدری مهربان و همسری فداکار رو تکرار میکرد از هزار شرکت می... تشکر میکرد خیلی هم طولش نداد یه 10 20 دقیقه اینا رو خوند و تموم شد و بعد تسلیت و عزاداری روی نقبره متوفاه ادامه پیدا کرد من اونجا فرصت داشتم که توی همون بلوک که ایشون دفن بود این تقسیم بندی بلوک های به زهران بی نظیره هر, هر قطعه‌ای که قطع بهش میگن یه شماره داره اه، اه، به تعداد کافی واقعا میشه گفتش که جای پارک وجود داره هیچ, هیچ کسی اونجا با مشکل جای پارک مواجه نمیشه مگر نزدیک ساختمان اوروجیان کسانی که میان برای خاک سپاری اونم دلیل این هستش که توی اون روز برای یه نفر یه دفعه صد نفر دیویس نفر میان ولی کسانی که روزهای بعد میان برای فاتحه خوندن و یه همچین مراسمی توضیح خیلی خوبی انجام میشه بین تعدادشون و همیشه جای پارک کنار بلوکا هست کنار قطعات هست اصلا قبل از این که حالا من توصیف اون قطعه رو بگم مشاهداتی که اونجا داشتم این رو بگم که کل نظام بهشت زهرا به عنوان یه انترپرایز به عنوان یه سازمانی که یک پارچه عمل میکنه من به جرعت میتونم بگم که بهترین سازمانی که ما تو این کشور داریم یعنی اگر یک سازمان باشه که این این اگر توی بازار بورس میرفت من سهامش رو میخریدم مدیریتش بی نذیره. همه چیش درست کار میکنه و بهشت زهرا تنها جاییه که شما میبینین کسایی که اونجا میان یه آشغال زمین نمیدازن یه زباله نیست به بهترین شکلی گل و درختاش گرفته تا تو، تا،, تا همه جاش نگهداری بی داره من فکر بهشت میتونه بهترین مقصد گردشگری کل ایران باشه یعنی که شما از دیگه میانی تهران برج میلاد رو نمیدونم کاخای شاه و سایر بناهایی که فکر میکنیم به عنوان جاهای دیدنی تو تهران وجود داره رو بی و یک راست بریم به رشته‌زرها و اول از همه مجتمع اوروجیان رو ببینید. اصلا توی این مجتمع اوروجیان هر کسی که میخواد کاری بکنه به نظر من این, این توصیه همه پدر مادرها باید به بچه هاشون باشه یا به کسایی که فارغ التحصیل میشن دنبال کار میرن. اول از هر چیز آدم باید بر اونجا کارآموزی بکنه. خیلی چیزای زیادی هستش که اونجا یه نفر قبل از شروع زندگی کاریش میتونه یاد بگیره اینکه اصلا ارزش آفرینی در یک سیستم یکپارچه ای که ارزش آفرین هست به بهترین شکل خودش به بالاترین کیفیت خودش چجوریه همین دکترایی که به بدترین شکلی توی این بیمارستان ها، این بیمارستان های کشور رو مدیریت میکنن و مردم رو خونه جگر میدن. بعد نیست که شروع کارشون رو اصلا یه دوره اینترنشیب یا انترنی در بهشت زهر رو یا حتی بخشی از کارشون به نظر من خیلی عالیه که در مجتمع اروجیان باشه مگر نه که ما الان داریم به پدیده هایی مثل کشاورز نانوا می رسیم یعنی کل سیکل یا چرخه ارزش رو یک نفر باید برش مسلط باشه مگر نه اینکه کسی که در بهشت زهرا دفن میشه آخرین حلقه زنجیره ارزشیه که در یک بیمارستانی شروع میشه چرا پزشک نباید بخشی از کارش در جامعه اوروجیان بهشت زهرا باشه و شما وقتی زنگ زنین از یه پزشک وقت بگیرین منشیش به شما میگه که آقای دکتر سوبا به اشت زهرا هستن و بعد از زورا میان مطبشون یا تو بیمارستان عمل میکنن من واقعا میخوام پزشکم کسی باشه که سوبا در سالان تدهیر مرده ها رو شستشون میده و نتیجه پایانی کار خودش رو لمس میکنه و بعد از ظهر یه بیمارستان رو مدیریت میکنه یه مطب رو یه یک عمل جراحی انجام میده من مطمئنم اون پزشک کیر خیلی بیشتری خواهد داشت نسبت به مریضای خودش مگر نه که begin with the ending mind اولین عادت از هفت عادت مردمان موثره حالا این میشه begin with the ending action not in mind هر کاری که میکنی آخرین, آخرین قسمت کار رو اصلا در عمل تجربه کن و تمرین کن اینو واقعا شوخی نمیگم کاملا جدی, نمی... جد... جدی میگم شوخی نیست همه چیز بهشت زهرا از اون در... درش که وارد میشین تا تو... حتی فرسنگ ها قبل از اینکه که به... بهشت زهرا شروع بشه شما میبینید دیگه هیچ... هیچ ساختمانی به حریم اونجا تجاوز نکرده برخلاف شهرها و محیطهای دیگه که مثل... مثل ساحل دریا مثل, مثل هاشی جنگل که از ساخت منسازی مسئول نموندن به ارتزار تنها جایی که از ساخت منسازی مونده البته خب به این دلیل هست که آدم ها جورت در بیش از یک اندازه نزدیک به مرده‌ها زندگی بکنم ولی هرچی که بوده دلیلش ما یک سازمانی داریم در جنوب تهران که بسیار تمیزه مردم توش صحباله خود مردم به نظافت و پاکیزگیش همت میکنن تقریبا میتونم بگم اونجا دزدی نمیشه یعنی اگر یه نفر یه گلدون یا یه گل میاره برای یه دوتا قبرون طرف بعد از رفتنش کسی اون گل یا گلدون رو بر نمیداره بذاره رو قبر مرد خودش یک احترام خاصی در هوا در فضا و در زمین اونجا نه تنها مشاهده بلکه حس میشه در حسوات من وقت داشتم که تو اون قطعه بچرخم و این تغییراتی که در این سالهایی که گذشته بود و من قبرستان نرفته بودم کاملا برام جالب بود شکل ظاهری قبر سنگ قبرها چقدر تنوع پیدا کرده و چیزهایی که روش می نویسن. زمانی که من به،, به زیارت قبور برای پدرم یا برای پدر بزرگ و مادر بزرگم می رفتم تقریبا قبرها یک شکل یک اندازه و یه جور بودن تاریخ تولد و وفقات روش نوشته شده بود یه چند به چهر نوشته بودن و اسم متوفا الان بعضی از سنگ قبره بسیار مینیمالیستی و سوپر مدرنه یعنی فقط اسم، یه اسم خیلی بزرگ روش نوشته شده بود من به که ارزی یعنی برعکس حالتی که معمولاً شما روی سنگ قبره میبینید کل ارث سنگ قبر یک اسم بود و دو تا تاریخ کوچیک پایینش هیچ اطلاعات دیگه‌ای رو سنگ قبر نبود این مینیمالیستی ترین سنگ قبری بود که دیدم تا سنگ قبری که یک یک غزل کامل شعر روش نوشته شده بود با اطلاعات کلی اطلاعات خردریز دیگه و و عکس چقدر عکس حکاکی شده بود روی سنگ قبره که من من قبلا ناییده بودم تکنولوژی ظاهراً امکان رو میده که روی سنگ عکس رو هک بکنن که کاملا حس عکس واقعی فرد رو به شما میده. هم روی سرامیک این رو چاپ دیجیتال کرده بودن و سرامیک رو داخل سنگ جا گذاشته بودن. بعضی از قبرها برجسته است، طول و ده 10 سانتی که بندازی 50 سانتی. بعضی از قبرها مثل قبرهای مسیحیای یه قبر عمودی هم داره. بعضی از قبر‌ها پایینش یا بالاش بندوزی 20 30 سانتی که فضای سبزی هست که یا سبزه یا یه درخت دوش کاشته شده چقدر گندم ریخته بودن روی قبر ها باز من نمیدونم برای چیه یعنی اگر شما یه قطعه رو اون روز میگشتین میتونستین دو سه کیلو گندم جمع بکنین بعضی از قبرو روش یه هفت سین مینیاتوری خیلی کوچیک بود و کل قبرو روش سلفون کشیده بودن اونم نمیدونم برای چی خلاقیت دیگه‌ای که من حس از سنگ قبرتراش ها میاد اینا احتمالا نشستن اونجا به اینکه یه عرضشی رو اضافه بکنن و یه مزیت رقابتی برای خودشون پیشنهاد بدن کلماتی بود که برای تولد و وفات جای کرده بودن که من ده تا از اینا تونستم اون روز پیدا بکنم و براتون میخونم اینا کلماتیه که قبل از تاریخ تولد و تاریخ وفات نوشته میشه یک آفریده آرمیده دو طلو غروب، یعنی جوی طلو تاریخ تولد جولی غروب، تاریخ و جولی آفریده، تاریخ تولد جولی آرمیده تاریخ وفاد سه از حق به حق، چهار بهار خزان، پنج آغاز پرواز شش، لطف او حکمت او هفت طول دانگیز غروب غمانگیز 8 این هم یه ورژن مینیمالیسی دیگه است که فقط دو تا تاریخ نوشته بود یعنی 9 خرداد و 1616 فروردین هزار سری شده هفت. اولین پگاه آخرین نگاه 10 اولین نفس رستن از قفس. خی... یعنی خیلی خلاقیت زیاد بوده هر گزینه ای رو که بگید کاور کردن اینا من خیلی فکر کردم که اگر من اونجا بخوام یه سنگ قبر داشته باشم من دوستان روی سنگ قبرم چی باشه اه... به عنوان تاریخ چون تاریخ خیلی مهمه یعنی شما اگر این علمان اطلاعاتی رو هست کنین از یه سنگ قبر اه... خیلی مپن میشه و کسانی که میان روی اون سنگ قبر بسیار من فکر میکنم که معذب میشن. مثلا علیه سخابتی خب این کی ب... از کی تا کی این از کی تا کیش خیلی مهمه اه... که همین باید شد بامانی یه گزینه از تا به نظر من برسته مثلا از پونزه سه, هزار سه، هزار تا برچی اه... یه گزینه دیگه هم که من فکر کردم میتونه کول cool باشه سفر و یک بود به حال به دلیل بکگراند آیتی هم که من دارم یک میتونه به عنوان تاریخ تولد و صفر به عنوان تاریخ وفات در نظر گرفته بشه یک خزینه دیگه هم که بزنم رسید یونیکس تایمه یعنی کامپیتری ها میدونن که یه چیزی ما داریم به نام یونیکس تایم استمپ که یه عددیه مثلا همین الان اگر یونیکس تایم استمپ الان رو بخوام بگم 149-06-52-60 این عدد تعداد سانیه هاییه که از اول جانویه 1970 تا الان سپری شده دو تا یونیکس تایم استمپ هم بد نیست حتی مشکل این سیستم اینه که تا 2038 به هم میریزه و اون 32 بیتی که اختصاص دادن به این عدد اوورفلو میکنه و حدس هم که یه تعداد بیت بیشتر 64 یا نمیدونم 128 بیت به این اختصاص میدن اون موقع و اگر من تا 2038 نمیرم با یه دو تا عدده گنده تر که بازم میتونه استم باشه روی قبرم از کی تا کی هم نمایش داده بشه یه گزینه دیگه میتونه خروج و عروج باشه که اینم از مجتمع عروجیان الهام گرفتم آمدن و رفتنم یه گزینه دیگه بود که به ذهنم رسید ولی هر چقدر سعی کردم تونستم ده تایی دیگه به اضافه بکنم همین پنیشتا رو تونستم به اون ده تا اضافه بکنم در هر صورت مراسم هفتم یه دو ساعتی اونجا سپری شد گریه و ناله و شیون به مراتب کمتر از روز خاک سپری بود هوا افتابی بهاری بود خیلی هوای خوبی بود ساعت دو تا چهار با تنقلات کافی میوه شامل میوه همون خیارو این دفعه خیار نبود چرا خیار بود؟ خیار، نارنگی، سیب، موز چایی، تیبک و حلوا و خورما و ساندویچ‌های کوچیک اولویه بود که دختران متوفا روز قبلش به عنوان خیرات انعام اگه اشتباه نکنم درست کرده بودن و البته تعداد زیادی ساندویچ‌های بزرگتر رو همون روز به کسانی که مستحق و برستن دادن یه جایی از فقیر نشین شهر کنار کوره های آجورپزی اشتباه ها گشته نکنم یه تعداد کمتر ساندیویچه های خیلی تر رو برای اون روز توی بهشت زهران نگه داشتم در هر صورت این بیشتر ماجرهایی بود که توی هفته گذشته برای ما اتفاق افتاد متنی که اول پادکست براتون خوندم یک صفحه از کتابه گوریز از شر نوشته ایرنست بکر بود گوریز از شر ترجمه منه از Escape from Evil کتاب فقالادهی در زمینه این که چطور زندگی ما صرف فرار از مرگ میشه کتاب جامعه نویسنده داره به نام انکار مرگ The Denial of که قبل از این کتاب گوریز از شر نوشته شده اگر حوصله داشته باشین اون کتاب رو بخونید خیلی خیلی بهتره خیلی با توضیحات بیشتری جنبه های مختلف روانشناسی و جامعه شناسی و پدید شناسی و فلسفی مرک رو توضیح میده و البته انکارش و فرار از اون در سطوح مختلف خداگاهی این کتاب خلاصه و بعد از اون یکی کتاب نوشته شده همچنان اگر چیزی برای گفتن در این پادکست دارین سوالی دارین که میخواین از من بپرسین یا ایدهایی دارین که دوست دارین در این پادکست گفته بشه به آدرس 8228.ali.sahavati.com ایمیل کنید نظراتتون در مورد این پادکست رو هم میتونید روی وبلاگ من زیر نوشته این پادکست به آدرس ali.sahavati.com منتشر کنید تا هفته بعد خدافظ